بسم الله الرحمن الرحیم فصل الایلاء فصل بعدی در رابطه با ایلاع است خب در میان عربها قبل از اسلام اصلا عرف بود که برای در تنگنا قرار دادن و فشار دادن بر زوجه سوگند میخورد که مثلا دیگه با اون زن نزدیکی نکنه و این عرف وجود داشت دیگه اسلام اومد اسلام اومد برای این قوانینی آورد نمیشه که مثلا همیجوری زن رها کرد و متذرر میشد و سرر میدید الاله از آلا یولی اله هست ببینی سوگند خوردن این اله مصدره و اذا حلف الله یا زوجته مطلقا و زمانی که سوگند خورد با همسرش نزدیکی نکنند مطلقا پس اگر مطلقا سوگند خورد که با همسرش نزدیکی نکنند آمیزش نداشته باشد او مدتا تزید و علا اربعت اشور. یا سوگند خورده بود که نزدیکی نکنند با همسرش به مدتی که بیش از چار ماه هست فهو مول این شخص مول هست مول اسم فائل هست از آلا یولی اسم فاعلش میشه مولیون که میشه مولن بله میگه این شخص سوگند خورنده هست مول حساب میشه ایلا کننده حساب میشه ایلا کرده آ همونجوری رها میشه نه خب یک زن تباه میشه حقوقش ضایع میشه و یاجل له به همین مردی طبق قانون اسلام فرصت داده میشه این سالت ذالکه اگر زن این چیزو خواست اگر زن گفت من اینجوری نمیشینم این آقا سوگند خورده که نزدیکی نکند اگر زن گفت که من این چیزو قبول ندارم در این حالت مرد فرصت داده میشه یو اجلو لهو این سالت ذالکه اربع تاشور چقدر بش فرصت داده میشه؟ چهار ماه <تصفيق> مردی که ایلا کرد بهش مول گفته میشه المولی یا مولین همچنین شخصی چار ماه فرصت داده میشه بعد از چار ماه یخیر یخیره بین الفیعتی و تکفیری اوی الطلاقی بعد از چار ماه اختیار داده میشه که از این سوگندش بر بگردد و تکفیر و کفاره سوگند رو بپردازه اول تلاق یا این که تلاق بده بله زندن خاص کرده که نمیتونن با این ایلای این زندگی کنم پس فرصت داده میشه بعد از چار ماه اختیار داده میشه که آ بر میگردد و کفاره سوگندو میده یا اینکه که تلاق میده فا امتنع خب اگر اومد و از دادن تلاق کرد تلاق نداد طلق علیه الحاکم حاکم طلاق میده بله پس حکم ایلا بیان شد مرد میاد سوگند میخوره که با این زن نزدیکی نکنه آمیزش نداشته باشه جما نکنه میگه اینجوری راها نمیشه تا چهار ماه فرصت داده میشه بعد از چار ماه اینو میگیرن میانن قاضی از سوگندش برگشت که برگشت چه بهتر بر نگشت با طلاق بده ولی خلاصه زن اینجوری نباید بنامد فصلون <تصفح> فصل بعدی اووهارو در رابطه با ظهار هست ظهار دیگه چه هست ظهار این است که شخص به یکی از محرمهاش به یکی از محارمش بگوید تو مانند به زنش بگوید تو مانند تو برای من مانند پشت مادرم هستی یعنی همانطور که مادر بر من حرام است، تو هم معاشرت با تو بر من حرام هست بعد. که امی. انتی که ظهر امی بزنش بگه تو مانند پشت مادرم بر من است یا مانند خواهرم یا زاده هم یا برادرزادهام یکی از محاریم اینو میگن زهار پس زهار این است که شوهر همسرش رو شبیه بزنی بکند که محرمش است والظهار وإن يقول الرجل لزوجته ظهاري شخص بزوجاش بگوید بزنش بگوید أنت علي كظهر امي توبر من ما ننده پشت درمسي يا كظهر اختي يا ما ننده پشت خواهر خلاصي یکی از قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق زمانك ظهار زمانك اين سخنو گفت وبعد از طلاق نداد ها این کارو در پیش طلاق نداد فقط این حرف زده بود و بست دیگه طلاقی نداد بعدش میگه ساره آیدن این میگردد آید رجوع کننده از حرفش بازگشته و لازمته الكفاره و کفاره برش لازم میشه بس اگر فقط زهار کرد و طلاق نداد، این سرش کفاره میاد. و الکفارت و کفارشی هست ادق و رقبتن، من العیوب المضره بالعمل والكسب. الکسبی. کفارش این که آزاد کند یک برده مؤمنی را که از عیوبی که در کار کردن و در کسب کردن به او زرار میرسونند سالم باشه. پس کفاره آزاد کردن برده مؤمن هست از عیوبی که ضرر میرسانند در کار اون برده در کسب اون برده سالم باشه فا یه جد اگر برده گیرش نیومد مثل روزگار خودمون فسیام و شهرین متتابعینی پس دو ماه پی در پی روزه بگیرد فا ایلم یه استطاع اگر نتوانست دو ماه پی در روزه بگیرد فاطعام اطعام و ستین شست مسکین را خوراک بدهد کلو مسکین مد هر یک مسکین رو یک مد غذا بدهد تقریبا نزدیک پانسد و پنجاه گرم این کتاب من پانسد و گرم به دست آورد <تصفيق> هر مدی رو. پانسد و یک گرم و کسی که ظهار کرده بعد از اینکه کفاره رو داد میتونه با همسرش نزدیکی بکنه ولا یحل للمظاهر وطاها حتى يكفر وحلال نیست برای ذهار کننده برای اون که به زنش گفته تو مالنده مادرم بر حرامی انتکه كظهر امي انت امي تو به پشت مادرم هست میگه حلال نیست نزدیکی کردن با این زن حتی یو کفر تا این که آقای مظاهر زهار کننده کفاره رو بپردازه بعد از کفاره دیگه میتونه نزدیکی داشته باشه فصلون فصل بعدی در رابطه با چه هست القذف واللعان تهمت زدن و لعان اینا دوتا تا اصطلاح هستم که توضیحشون میاد یکی بیاد زنشو تهمت به زنا بزنه قذف اینو میگن البته قذف در اصل تهمت به هر زنی رو میگن ولی اینجا منظورش تهمت زدن به همسر است که فقط توضیحش در این رابطه است و لئان لعان کردن که توضیحش میاد کیفیت لعانی اصل لعان هسن. ريشه بمعنية لعنة كردن است بله خب وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا وزمانك كتهمت زد شخص زنش راب بالزنا زنش رو تهمت الزنا زد كشما زنا كردين فعليه حد القذف. بس برين شوهر مي آيد حد قذف. 80 شلاق زر هست دیگه حد قف الا ان یقیم البینه مگر اینکه شاهد بیاره مگر اینکه اقامه بکنه بیینه رو ها شاهدی که در بحثه در بحث این زنا شاهده 4 تا هستند باشیم باشیم مثل بقیه مسائل نیست او یولاین یا اینکه ملاعنه کنه بسی یا ببینید اگر شوهر زنش رو تهمت بزنازد بر او حد تهمت میاد مگر اینکه یا شاهد بیاره یا لعان بکنه لعان چیه کلمات مخصوصی هستند که مرد اونا رو میگه و خب میخونیم بهترست. است عند یقولو مرد نزد حاکم میگوید فی الجامع ال المنبر در مسجد جامع بر منبر فی جماعت من الناس در گروهی از مردم اشهدو بالله اننی لمن الصادقین فی ما رمیت لمن الصادقین فی رمیت به زوجتی فلانه من الزنا. گواهی میدهم به پروردگار همانا من از راست راستگویان هستم در این تهمتی که به زنم فلانی زدهام از زنا کردن این تهمتی که زنا کرده رو به زنم زدهام من خدا را گواه میگیرم که از صادقین هستم و ان الولد من الزنا و ليس منی و این فرزند از زنا هست و مالمن نیست اربع مرات 4 بار اینو میگه و في فی الخامسة بعد ان یا الحاکم بعد در مرتبه پنجم بعد از این که حاکم او رو نصیحت میکند اینجوری میگوید و علی لعنت الله این کنتو من الكاذبین و لعنت خدا بر من بعد اگر من دروغ میگویم چرا بهش میگن لعان خاطر که بار پنجم شوهر میگه در اون تهمتی که بزنش زده لعنت خدا بر من بعد اگر من در این تهمت زدن دروغ میگویم پس؟ متوجه شدیم که چرا اینو لعان میگویند خب لعان همینه همین که چهار مرتبه میگه گواهی میدهم اوه. یا سوگن می‌خورم به پروردگار همانم من از صادقان هستم در این تهمتی که زنم رو زدم چهار بار اینجوری میگه و بار پنجم بعد از این که حاکمونو نصیحت میکنه میگه لعنت خدا بر من اگر من از دروغ گویانم بس اشهدو بله شاهد میگیرم خدا را سوگن میخورم به پروردگار خب این میشه چی؟ لعان یا حد برش میاد یا شاهد میاره یا لعان میکنه لعان کرد دیگه حد روش نمیاد و یا تعلقه بلعانه خمسه تو احکام و به این لعان کردن مرد پنج حکم تعلق میکره یک سقوط الحد عنه حد حد تهمت از گردنش ساقط میشه دیگه حدش نمیزند دو و وجوب الحد عليها. ها حد بر واجب میشه سه و زوال الفراشی فراش زائل میشه دیگه اینا اجنبی میگردند دیگه اینا زن و شوهر نیستند برای همیشه زوال الفراش فراش خلاص از بین رفت و نفی الولدی فرزن دیگه مال این نمیشه فرزندی که هست در این وسط و روش لعان کرده مال این نمیشه و تحریم علی الابد و, و برایحه میشه بر این مرد حرام میشه دیگه نمیتونه بعدنها هم با عقد جدید باش ازدواج کنه و از قتل حد و انها بان تلتعین خوب میگه همچنین ساقط میشه حد از زن با اینکه لعان بکنه بعد از اینکه مردمت مرد اومد تهمت زد و لعان کرد حد روی زن لازم میشه مگر اینکه زن هم بیاد لعان بکنه فتقول اون زن اینجوری میگه اشهدو بالله ان فلان هذا لمن الكاذبین فی مرمانی به من الزنا اربعه مرات خدا را گواه میگیرم همان فلانی یعنی من شوهرش که او رو تهمت زده از دروغ گویان است در این تهمت زنائی که مرا زده است. چار مرتبه اینجوری میگه و ف فی المرت بعد ان یعظه الحاکم و بار پنجون بعد از این که حاکم اونو وعزو نصیحت میکنه اینجوری میگه و علی غضب الله این کان من الصادقین خشم خدا بر من باد اگر شوهرم راست میگوید بله اینو میگن